اعوذ بالله <سؤال> من الشیطان <سؤال> رجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلات و سلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم عزیز در عفتی گذشته اگر فکرتان بوده باشد کسایی که تشریف داشتن درس ما سر خود نفس بود در قسمت سر نفس صحبت کردیم و گفتیم با خواندیش و عفتیو آینده سرش بحث میکنیم ما خلاصه‌ی آنچه که دفعه گذشته گفته بودیم رو براتون خدمتتان عرض می‌کنم باز بعد از اون باقی مونده‌ش رو تکمیل می‌کنیم گفتیم در هفته گذشته که نفس انسان سیر صعودی داره یعنی حرکت به طرف بالا می‌کنه و سیر نزولی داره که به طرف پایان میلakse و به طرف قحقره و عقب میل و علت طزی که چرا نفس مثلا احیان بالا میره و سهل سعودی داره و چرا پایین میره؟ به خاطر ازی که خلقت انسان که است، انسان از دو بود ساخته شده، دو بخش است همین وجود انسان که است در داخل این قفص وجود انسان هم بخش معنویت و روحانیت است و هم بخش مادیات و حیوانیت است پس از یک طرف انسان در داخل وجودش یک سلسله از غرایز است غریزه حب مال است که تو هر کس مال خوش داره اگر کس میگه نی ولی مکه مال خوش ندارم و دروب میگه دروب میگه مال هرکس خوش داره حب نفس از حب شهوت است، غریزه غریزه جنسی هست هر هرکس غریزه جنسی داره اینال یک سلسله غریز در وجود انسان که اگر باز خواستم میشه سر بحث بکنیم لیکن خلاصه ای که انسان از دو بخش ساخته شده ما مخلوقات یکودی داریم ملائکه ها است را در پیش گذشت کردم که ملائکه ها هستند ملائکه ها خواهشات نفسانی ندارن غرایز ندارن فقط آنچه که امر الله جل جلاله هست مطابق از مو عمل حیوانات کاملا مادی هستند حیوانیت است و شهوانیت است و خوراک است و آپاست دیگه اونا بخش معنویات ندارن حیوانات تک ما انسان متشکل از هر دوی دو واد است انسان از یک طرف داخلش معنویات است و از ای طرف مادیات است از ای طرف روحانیت است از ای طرف حیوانیت است از ای طرف معنویات است از ای طرف غرایز خطرناک است که ایره به طرف بی‌رحمی کشاند ولی انسان از داخل خود یعنی انسان در داخل خود همیشه در داخل انسان بین خیر و شر بین خوب و بر بین مادیات و معنویت یک نوع جنگ است تکر است ایناله در دست چند اقتر پیش که بکتان بوده باشه سر از بحث کردیم و گفتیم که دین اسلام بین از یک نوع سلح ایجاد میکنن سلح ایجاد میکنن اگر سر زمین شده کن آله سر مسئله نفس نفس در داخل وجود انسان که است نفس هم بخش خطرناک داره که انسان به گمراهی میکشن و هم اصلاح میشه یعنی نفس انسان این است نفس از دیدگاه اسلام کرد در آیات قرآنی نفس برش کلمات مختلف استعمال شدن در مرحله اول گفتیم که نفس اماره بسو است و ما اوبری او نفسی این نفس لامارتون بسو و اماره چیمانه یعنی بسیار امرکننده کننده یکی آمر است که امر میکنه و یکی امار است که بسیار امر میکنه یعنی در آغاز نفس اگر انسان امیخصم نفس خدا ایلا بته به سوح هست بسیار به طرف بدیه ها انسان هم شما یک عصف بدون زین بدون قیزه بدون همه چیز ایلا و تربیش نکو اسب از چجرک هست و همه تبان و تربیش نکو و قیزه میزه ندارن خیز میزنه اگه وقت ببینی که کتلقه زده دندانا یکی رو شکستان در سر دگر از دیوال خیزه در زمین های دیگاه رفته از یه خاطر این رام باید شو. چه قسم رام میشه که سرش در دا دانش خیزه را میبانه و در سرش زینه میبانه و بلاخره یه چوچه که عصب باز آماده سواری میشه نفس انسان هم قسم است در آغاز مثل امی چوچه عصبار خیز میزنن از طرف میره و تره کشف میکنن به طرف بدیه ها امارتون به سوخ است ولی با طریبی نفس با امسان میتونه که آهسته آیسته وقتی که قرآن مطالع میکنی، قرآن قرأت میکنی، قرآن میفهمی، در قرآن تدبر میکنی، آیات قرآنی رو میخونی، باز اینجا چی میشه؟ و نزر و من القران ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین باز بر تو شفاء نفس مریض مریضتره قرآن چی میکنه؟ شفا میده دوبارش می. علت که تو سرگردان هستی بر تو رحمت پس در قرآن شفا و رحمت است میتنی با قرآن و شفا و با قرآن و فهم قرآن و درک قرآن و عمل و قرآن و استفاده از اس قرآن امی نفس از نفس اماره به صوبه بکشیم پس وقتی که این نفس تحت هدایات قرآنی و سنت نبوی صلی الله علیه و وسلم نفس تربیه شد پس این نفس مبدل میشه به نفس لوامه طرف بالا حرکت کرد سیر صودی کرد بالا رفت در... ببینید درجه حرارت پایل بود بالا رفت 50 درجه کجا رسید؟ نفست مبدل شد به نفس اماره بسو. سو نفس اماره اماره چیمانه؟ بسیار... ببخشید به نفس لوامه به نفس لوامه مبدل شد نفس لوامه کدام نفس هست؟ لاوم ملامتی رو میگن یعنی نفسه که این نفس خودش انسان ملامت میکنه از داخل چه هم ملامت کننده هست؟ میخوایی که گناه بکنی؟ امرویش کس مشوره نکردی. پیش خود شیشتی من آرسیم هست، آرسی خودم است آرسی بچه هست، آرسی برادرم هست، آرسی دوستم است. نفس الله از داخل تو میگه که ایتیاد کنی. ایتیاد کنی که غذاب خدا را در حال سیتر داخل نکنی ایتیاد کنی که تو وسیله نشی که 500 نفر دیگه را به گمراهی بکشونی احتیاط کنی که كلكم راعن و كلكم مسئول عن رعایته پیغمبر خدا صلی الله علیه و که تو مثل یک چوپانی هستی که چوپان مسئول زایمه های خود رو واسه چوپان گفته نمیدونه که چوپان به دیگه‌ یکی چه شد ولی یک گوسفند سه باز دیگه چه شد دیگه چه گور کر کرد دیگه چه, چه شد مالک کسب شکایت میکنه خای تو بری چی بودی خای تو بری چی بودی والسه دخترم گمراه شد بچه‌م گمراه شد دخترم این کار کرد خانم ما فلانی خواننده‌ها را گوش کرد فیلم‌ها را سر کرد خای تو بری چی بودی دیگه خای تو چی بودی كلكم راء و كلكم مسنون رایته فورا این ای انسان متوجه میشه و توجه خدا به طرفی چی میگردانه؟ توجه خدا به این میگردونه که از داخل نفس لوامه ایراد ملامت میکنه ملامتش میکنه که نکویی نکوی و الله جل جل نفس را خوش داره الله جل جل این نفس لوامه خوش داره که وقتی به گناه میره مانش میشه وقتی که گناه کرد ملامتش میکنن پس وقتی که خودم ملامت کرد باز توبه میکنن در رحمت الهی همیشه باز است همیشه باز است بر گناهکارا بشارت بتین و بر نیکوکارا نیکوکارا را بترسانین تو قرارا بترسانیم بدکارا رو بشارت بدهیم رحمت الهی در واضح باز است هر وقت که رجوع بکنی، الله تو را قبول میکنه و خود یا عبادی اله دین اصرک و لا تقنت من رحمت الله از رحمت الله نا امید نشون. الله رحمتش بود. لکن پیش که ملک الموت گیرد کنه توبه کن رجوع کن تا که نمی فامیدی پس رجوع بکن اما اگر اصرار کردیم باز در اصرار که تا وقتی که ملک الموت جان داره باز وقت مثل فرعون واره که هرقدر چیخ بزنی باز میگه که الان و قد عصیت گفت و گناه دوام دادی وقتش نیست خلاص است بس الله جل جلاله نفس لو را خوش داره و برای نیکو کارا را بگ بترسانیم چرا بترسانیم به خاطر که بترس تو نیکو کار که مغرور نشی مغرور نشید چون اعمال در خاتمه هست. سری کسا در جوانی خوب دیندار است، وقتی که کم کم سنش بالا رفت، شیطان ده جانش ها زیاتر شده میره. در جوانی بسیار خوب است، روز به روز که عمرش زیاد شده میره، گمراهی بیشتر میشه و بیشتر میشه و بیشتر میشه, میشه تا کله سقوط پس انسان هایی که نیکوکار هستند از خاتمهی اعمال بترسن که نشه که به طرف بدی ها شیطان در بکشه تو خوب هستی تو چطور هستی و تو از داخلی از بیرون گنده بسازه. الله جل جلو قسم یاد میکنه باید کدام و لا اقسمو بالنفس اللوامه چیزی که بسیار الله جل جلوه و چیزی بسیار با ارزش قسم یاد میکنه بنامه نفس اللوامه پیش الله جل, جل جلوه بسیار ارزش داره چرا نفس اللوامه را علمای روانشناسی و وجدان زنده تفسیر میکنه وجدان زنده کدام وجدان است قوه داخلی است که حرکت های بیونی رو کنترل میکنن وقتی که نفس لوامه شد نمیمانید که تو کارهای زشت بکنی وقتی که میخوای برخصی از داخل خودت میشرگی خودت خجالت میکشی از داخل وقت میکشی چی میکنی خجالت میکشی قواری تو سگی و کتگی تو سگی و میرخصی رشخندی میکنی اما نفس اما را رو به ببینی که ریشش که رشت صفید از سنش کلام شده خیسته سه گبه بچه های جوان چرخک میزنه بیشی که که که که اینست پینگیر ایماما که بیشی و خوشش میگه ولا ما بسیار کار خوب کرد پس نفس اللبوامه نفسیست که او رو الله دوست داره لیکن پینجه ها فیصد بلند رفته پینجه ها فیصد بلند رفته میتونه که نفس اللبوام با تعلیم علم با مجالسات صالحین با قرآن زندگی کردن با سنت زندگی کردن با اهل قرآن زندگی کردن بسیاری کساست که یک نفر میره یعنی یک نفر میگه سایی من شیخ نیستم آلم نیستم قرآن یاد ندارم حدیث یاد ندارم ایره یاد ندارم میره یاد, یاد, یاد ندارم بسیار توازو میکنن خیلی چیستی؟ خدا و من قائله که نمیاد 145 نفر از پشت پشت میاد و مصفی شده است گفتم نه تو خوب الان هستی تو خانه اوا خوب خدای 50 نفر به شرمانه که از پشت تو میاد تو میگی بشاره که ما عالم نیستم حدیث نخواندیم مدرسه نخواندیم درس نخواندیم کتاب نخواندیم ولی نیستم فلانی نیستم فلانی نیستم فلانی نیستم, فلانی نیستم. تو که یک... از یه رو پیغمبر گفته شما بشت یک جاهل بدمیم بشت یک جاهل بدمیم پس یا باید بشتر دونه تو خوب آلم هستین تو گفتی، لا وقتی که اینو قدر احمق هستن آیت غلط میخونن، حدیث غلط میخونه فتوا از دل خود میگه گفه از خود میگه و بالاخره مردم گمراه میکنن و این مردم گمراه هم که ازی ششتن تنها اخلاص کافی نیست که ما اخلاص سری کسا اخلاص دارن گمراه هستن اون دو کم اخلاص دارن اون دو سباکی هنوز تو خواستیم وقت در امسال رفتن وقت ببینید شیر در کله گلد کلیب شیر در میتواز شیر من داختن در دا دوگانان دو در بین جوی بازورم میفتن جوی شیر جوی شیر جور شده بود اینجا چرا اون دوان شیر انداختا میرفتن بسر با اخلاص لکن آیا اخلاص انسان به حق میرسن نه خیل پس می نفس لوا بلندتر ببری، تربیش کنی بیشترتر با کدام منهج، با قرآن و سنت، با قرآن و سنت. امروز یک تعداد بسیار مردم هستند که میگه ما مسلمان هستیم، متدین هستیم، با حق هستیم لکن رو چرا اخلاص دارن؟ ولی مشکلشون چیست که قرآن نمیفهمن، سنت نمیفهمن، سنت نمیفهمن. اگر از کس برای ما قصه کرد. سنه خورد بود او قصاب خوشم آمد گفت برای کاس ی 500 دات گیره بو بر بره فقیر او رفت کل پیسه خدا بر مو دکاندارایي خوب است عین سره عايش سابي یک يک خلته پيسي چيز داده ياست تو گفت آمدن از پیش پرسوان كردن چې کل به غریبونه دادی برای پيسادار خدا داده بود دادم. که خدا زده بود ما هم او خدا زده بود ما هم او خدا زده بود. من یک بعضی قصر را شدیدم اما تو گفتم غلا البته راست میگرد دیگر روز که آیت شریفه در سوره یاسینی شریف میخوانم. که میبینیم که عمل کرده دید زد آیت قرآن است انات عموملوی شاق الله و اتعمه گفت مردم ما بدین بگن آیا و کسی که خدا نان ندادن ما نان بدیم که خدا زد ما باید بزنیم در حال که الله جل جلوه موطر آزمایش میکنن فقیره در فصلش آزمایش میکنه و غنیره در قناهش آزمایش میکنه جوان در جوانیش آزمایش میکنه ریشتفیده را در ریشتفیدیش بیکاره در بیکاریش کاریش آزمایش میکنه کاردار در وزیفهش آزمایش میکنه پس ما حدود 24 سال در آزمایش الهی هستیم بس خاطر که موتور رو آزمایش میکنه الله جلجاله هو رو فقیر ساخته تا که در روز قیامت امون فقیر از یخن موتو بگیره و یه پا میزنه اون نفر میگه فوال مقناعت کرده بودم دیگر روز که سوری یاسینی شکل میخواد میکنه سر دیگه چیزی آمده که والا کسی از اون مردکه زد قرآن است و این کسی مردکه به بسیار چربی و نرمی میکد کل اگه برش خ این برمامت رو آقای نامتو کن که بوده که خدا داده با خدا دادگان یک روز یک مولوی خبیص بیردین در سر قبل ترکیز سال شده بود باز گفت با خدا دادگان تیزه مکن که خدا دادگان دا خدا خدا است یعنی که تیزه ستیزه نکن این چاکیر خو برازی خدا است خدا برازی داده بر کمونست بیردین قاتله که ملت کشت و کل مردم از زندانان داد برزو خدا نده و تو باس رستی باس دسار قبرش دیگه باش میفتی با خدا داده گان سه تیز نکو که خدا, دا خدا داده گان خدا داده هست با لال بادل میگم که با خدا زاده گان سه تیز نکو که خدا زاده را خدا زده است باز شاعر دخودش خفکش کرد بازش دادنش من داد کت شاعر دخودش خلاقش کرد و بر شد اون تیش کس دیگه خلاصش نگیر شاعر دخودش کرد خفکش کرد و شاعر جونیلو بترید ایلا بودی که نفسم برای دام و بارشت من دید حفیظالمین کشتشگی واضی برای گفت که تو خمید من خلاق هستم یکی خالق هست خلقونه در یکی خلاق یعنی بسیار خلقونه در عیاد دلع در رحبر خلاق میدانست ایناله پس نفس مطمئنه وقتی که نفس اللوامه را تربیه به مبدل میشه به چی؟ به نفس مطمئنه به نفس مطمئنه مبدل میشه نفس مطمئنه کدام یکیست؟ در قرآن میگه یا ایتوها نفس المطمئن ارجعی الى ربک راضیه مردیه ای انسانی که تو صاحب نفس مطمئنه هستی برو به طرف پروردگار راضیه مردیه تو از الله راضی هستی ولی الله هم تره راضی سخت پس نفس مطمئنه نفس که از احکام الهی و از قوانین الهی راضی هست و الله هم ایره رازی ساخته از نیمتهای خود هرچی که خواسته باشه برش خداوند میده از این خاطر راحت داره این ها دیگه ای سی و برای ار علامات است یکی ما درس هم نیخانیم درس تقلیدی کورکورانهی که مولوی سف سر غیبت گف میزنه باز وقتی که مولوی سف های غیبتش خلاص شد باز وقتی که برامدیم غیبت خود مولوی را میکنیم مقتدی وجه مولوی صاحب میگه غیبت او شدید من از zina او مردوم غیبت نکنین که از zina بدتر است او مردوم مردم که مردوم ظلم نکنین خیانت نکنین این نکنین ای نکنی. یا کل کپایت رو گوش گرفتن وقتی که از مسجد برآمدن با سر خود مولوی غیبت خود مولوی رو شروع کردن والا مولوی صاحب لنگی یکیش که ما که کج بود والا مولوی صاحب کالج که ما که کوتاه بود والا مولوی صاحب فلانی جای یک کلمه از دانش خطا خورد ایشان فصاحت و بلاغت نداشت پس اینا خواندم گوش گرفتم لکن پس خودشان با این مدرس مطلع نه اما در سایت اینجاست یعنی در سام ما شما وقتی که گوش می‌گیریم باید هرکس کس فرمول‌ها رو بگیره و واسه پیش خود بشینه خودمون محاسبه بکنه خب امروز من روز جمعه رفتم به خاطر که کسی که در روز جمعه به درس میاد انسانای من میاد به درس روز جمعه وقت خوده به در درس میاد یعنی روز جمعه حالا فعلا در افغانستان از کل فسادها در روز جمعه هست توی در روز جمعه هست خیرات‌های دروحی و ریاکاری کل در روز جمعه هست معجزه صای در روز جمعه، سح جنگی در روز جمعه است. ها؟ تخم چنگی در روز جمعه است. آل روز جمعه که روز مقدس مسلمان است، ایران مسلمان‌های لا اله الا الله محمد رسول الله خرابطری روز همی روزه ساختن. این روز که باید مسلمان‌ها این را برای عبادت تخصیص بدن. کل گناه ها را نگاه می‌کنن، نگاه می‌کنن، نگاه می‌کنن، با چه وقت؟ روز جمعه. روزی که خداوند روز عید مسلمان‌ها در هر هفته باید روز اید داریم. روزی که اون ساعت اجابت است که دعا قبول میشه روزی که این روز باید عبادت باشد درس باشد انسان باید از احوال دیگران با خبر باشه نماز جمعه برای ببینه که چی پس است مردم نماز میخونه و بود از حالت دیگران در روز کلی گناه ها ببینه سگ جنگی ها را مانده مانده ماندهونه مانده مانده که سگای خود در روز جمعه روان است ایناله الکدام از یا علامت از خود داره علامت باید یادداشت بگیریم یک یکی و باز از خود پرسان بکنیم که نفس ما کدام نفس است علامات نفس اماره چی هست نفس اماره به سو یک علامه اولی چیست که در وقتی کذاشت گفتم که انسان تشویق میکنه به بدی ها بدی که رواج است رواج است حتما آن رواج است که باید خانمتان داراشتگاه ببریم رواج است رواج است که در روز اول باید پیشانویید وقتی که یک نفر برادر خانم خود در چارایی استاد کرد قولهش لج سرش لج و چار نفر بردار رو رسل میکنن یا در به خدا هم خودت و خلگرد خانم و همسر و فامیل خودت پس اینال رواج است باید کارا بکنیم رواج است باید بکنیم پدر عروس عطمان باید حرام بخورن چرا؟ چرا آلی در افغانستان رواج به زیده قرآن و سنت است. هرکسی که رواج گفت در ایمان خود شک کنه. کسی که رواج رواج میگن از دیدگاه قرآن و سنت شک کنه در ایمان خود. به خاطر ازی که رواج ضد قرآن و سنت واقعی میشه. چرا نمیگه که پیغمبر تو گفت چرا نمیگه که خدا اتو گفتن؟ اگه بابی عروس بی اکل احمق که چارصد نفر هم نان میتن و از او داماد بزور چل سیر میگیره بزور دوست نفر سرش دووتن ما دو نفر داریم 200 نفر ما داریم خود دوست نفر که تو داری تو بابی عروس 200 نفر حق که بزور سرش داماد دووتن نفر پنی سرش میخورن و جواب میتن تو میگه بادت بخت کس است که به خاطر دنیا آخرت خود از داد و بدبختر کسی است که به خاطر دنیای دیگر را آخرت خود از دست می کنه می خور دگر را با بیارست کمرکش بسته روش سیا دگاز تا بدن بالا بدون، می دیگر و می خور دگر را باباس کلی که این نان از ای بی‌غیرت نیست این نان از دیگر که از گرفته این موتر که یک چاله که و با دسته دویی تیخ در و یه بادپکک کلی نیزی هست پیسه تویانه هست لکن دروغ در مردمه ما و خود خریدیم دروغ میگن در لکسه ای لگه گرفته بازه هزار هزوره سعودا آوردن باز لنگی خوده بالا آمین مند که صحیح برده تن آورده باز زنا در میگن یخچه هم آوردن ما بارک چشمش بازه بازه خوارک با زنا این چلا رو میکردست مگه چار لک این افتار دروغ است این ای رس خود نه این قالین هم چار لک ده ایز گرفته ده ایز گرفته نست پیشن رجی ای خریده این نفس اما را به سرچی میگه تشویقت میکنه به بدی ها تشویقت میکنه به رواج به قوم پرستی به زبان پرستی به این چیزها تشویخ میکنه با گناه به بیدینی به بینمازی تشویق میکنه این علامت اولش است علامت دوم نفس اماره ویسو چیست؟ که وقت گناه کرد وقت گناه کرد باز در وقت گناه باز براعت میده دلیل میده تو جوانستی حق داری که بکنی کارانه او بنادر خبر نداری گویند خوردن می در این ملک حرام است آن چیز که حلال است در این شهر کدام است خیم ما راجعگانیم مریش ما دخترای چه پدرایش رویاکی مکوبم امتون نرم نازک جور نکنم. ریش کردن حرام است خانم دلوقت چهاری استاد کردن حرام است رشوت خوردن حرام است ماشی زنا حرام است شراب حرام است خیبرد چی حلال است دیگه نه نه نه نه یک پاره خب کدی که کردی خب کدی نفس چی میگه نفس ما را سومه دلیل برش پیدا میکنن. خب کردی جوان است یا اوز واحد داری باز کریش تاپیچیدی باز تو می کنی باز امکانات داری دیگه تو مجبور استی آله کرش وقت نخوری حچ <تصفح> تو بری یعنی روزان تو برای کس استاد شما مطابق مقتضای حال صحبت نمیکنید دلاغت تحریف شمیست که سخندوطان مطابق چیست مقتضای حال است سرمای کس انتقال کنید خب ما چون یاد تیم سیلی خردسر مازیات انتقاص آل بیخی پخته شد هر طرف معلمان انتقاد میکنه یکی میگه صد خوش من اعجابید یکی خوش منام یکی میگه کت قوره زما کت جطور زما اون خالی تو به تشکر از داوود شی خالی داوود بود دادی که کنه دل قلب رو یکو ها که شما مطابق مقتضای حال صحبت نمیکنید شما وضعیت عینی و ذهنی جامعه کنونی افغانی را مطالعه نکردند تبلیغ میکنید خب شما الله خایسته بفرمایید شما این کنم. مثل دوار بیشیم. تو ما کلمه بساکن مثل شاگرد رو بهشید بشید تو هم شرایط عینی و ذهنی کنونی و سخرهای مطابق مقتضی حالا تو یک چند نقطه ما یاد بدید که ما برام روزی شما ببین شاگردان بگویید بفرمایید شه یادداشت گرفتید خب بفرمایید شیخ کلم استاد عزیز امروز ما خوشحال کن خب اگر شرط نخورم باز حج به این ماشه کار خب مگه تکی پاکستانی به نام جاپانی نفروشان باز میتونم که مسارف رو بطم خیلی چی کنیم بایچه ما بسیتی نگیریم همیست سخن مطابق مقتضای ما هفتم برادر عزیز روز جمعه دیگر رفتم در پیش 6 شیشتر بود گفتم لعنت خدا سر رشوت خود لعنت خدا سر رشوت خود لعنت خدا سر رشوت خود تو رشوت خود فکر میکنی که روز جمعه چپنک بپوشی و کلاگا که در بانی و جای نمازه که در ایشانه پرتی ای و ای اولادای تو در روز قیامت از یه خنت میگیره و رسول خدا گفته که لعنت خدا سر رشوت خود لعنت الله علی الراج هر عالمی که ضد گف پیغمبر بزند دشمن پیغمبر خداست رشوت تا روز قیامت حرام است و تا روز قیامت لعنت خدا هست در رشوت خوش آمستی خانه تابا پیغمبر مطابق مقتضای حال است و حال سخنای پیغمبر تا روز قیامت است تا روز قیامت است اون یک که پیغمبر چارده قند گفته مثل اینه میافتاب است چارده قند هم اینه می آفتاب بود و حال هم می آفتاب است سخانه های پیغمت تا روز قیامت هر کسی که برای تو گفته که مقتضای حال است واش اگه شرایط زینی است شرایط اینی است خدا بشرمانه خدا حجت قبول نکنه حج از پیسی حرام نمیشه هیچ سر تو که غریب فرض نیست. سر پیسدار بین بنای مسلمانی سر غریب سه بنای مسلمانی زکات و حج سر غریب گلخان هیچ نیست بزرگ چه سر خود فرض میکنیم حج ننفتی؟ نه ننفتیم روز قیامت در دروازه حج کلیگی میره من پیسه ندارم خلیس برو بخیر ترافیق همیشه موتربودهولا راستاد میکنم من سر بایسکل میرم این چیز نمیگم برو بخیر میرم ازی بایسکل ها کی ها؟ از ا سر با سیکل خود سوار است ايش میشه موتور داره رسالت میکنه میشه رسالت باشه چرا هر شرطی چرا زکات نمیدید پس تو چرا با در جا درای در با سیکل درا بندی یا در تاکسی ششتی؟ وقتی که شیشتی با زور سرت فرض میکنی و وقتی که سرت با زور فرض کردی هر سرت فرض شد بایسیت حرام است قبولم نمیشه اصلی کساس اساس دینی و بی خبری هستین خانم خود از گشنگی کشته است از اصل شوله خورده و پیوغه خورده پیشه را جمع میکنه هج میرم میره نفقه سرش فرض است نفقه فرض است که در مقابل دین پیش خداوند جوابگو است حش سرش فرض است فقیر است لکن از نفقه خود نفقه اولاد خود نفقه فامیل خود است که خانمش سعی چوب گشته است است که لاغر چوب گشته بر اثر خور غذا نمیتن او پیشه هضم نه آش کایسر تو فرض لما ها عمو گفته که کسی که استطاعت داشته باشه استطاعت ندیشه سر زکات نیست پس مختزای حال مختزای حال خودت بازی این اینو مشکل دیدی چی است مافلتم برادر جان تو مشکل دیگه نداری میفهمم تو چی مشکل گفتی من مشکل ندارم گفتم تو مشکل تو یہ که تو نفس اماره به سو هست نفس اماره به سو در بدی ها انسان چی میکنه تشویق میکنه ملامتت نمیکنه رشوات میخوره و خوشحال هم هست، خوشحال هم هست. حالیک بهش که برادر جان اینی کاره که من از ماخرابا عادت ماست یک چهارهزار پنجهزار رو شوید بگیریم و افتخار میکنه و افتخار به گناه کفر است. اگر نماز نمیکنه افتخار کنه که من نماز نمیکنم. این نفر سنا کنه بله گناهگار استم گناهگار است. افتخار کنه که سنا میکنم کافر میشه؟ افتخار به گناه کفر است. روشواد خود که وقت باید خود فخر میگرا و در مجلس بلند قسم میگره خدا با کفر میرسه ولی بیچاره نمیفهمه بیچاره نمیفهمه نمیفهمه چرا نمیفهمه بخاطر اینکه بدین وقت نداده دست نمیشینه سی دی که دید دفعه شخص ما مولوی صاحب سیاد دید که سفید اما که از کول میاد از کو پای مال هم سی دی کردن تلویزیون هم در خلالی هم بدن دیگه کم شد دیگه چه این اینجا را, را در سیدی یا شروع کرد میگن ما مشنابیم از این گوش مشنابیم از این گوش دیگه با مبراید ایناله علامت نفس اما را به سو اول تشریقت میکنه بکنه دوم وقتی که گناه کردی نفس اما را به سو دلیل میده خب کردی خب کردی حرام خوردی حق دست فلان فلان فلان میخوره دیگه. تو چرا نخوری سیاسه رایید سر ی په لوږه څوک تانګه پیدا نه یو، ستاسو د بیا تانګه میزنه، د ګرای ګپا را میزنه، چوری کوي مولوای صاحب دخترخیل نان خوردن حرام است، دخترخیل حرام است دیګا کې میخوري، بو نگو لا حلال است، په خاطر چی په خاطر ځکه علماء میګن که یا غصب است چې هست وقتی نفر دختر خدا برای کس دار. از داد، از نگاه شرعي حق دار از پیش کدا وقت که از بگیرم، بفرمای کدوم او برد در خانه خود نکاه کرد بعد از او بچه تصمیم میگرد و مردم نان بطن و میرسه یا نمیرسه در زمان رسول الله صبح میقسم بود در زمان صحابه اکرامه میقسم بود تو که مسلمان هستین نکا بکن نکای شرعی خانم خود او به خانه خود میبره. وقتی کنجا برد خلاص بعد ازی دلش دل شد مردم از کارت روان میکنه یا خبر میکنه ولی من میکنه دلش نشد توانیش ناید. خلاص. ادریس اسلامی اما اینکه بابیاروس از پیشدی 40 ثانیه میگیره تا که چلسی برنده تیمه تو این میتمتن این چی است این پاتکی است این بابیاروس دوز است خف کردن با زور در مقابل ازش مثل اینکه قاضی بگه یکس یک میگه من کارتنمی کنم تا که برام یک لگری پنالتی میگیری شوط میخورم. یک مدیر رئیسه میگه تا کار نکنی تا 50 هزار نتی بر تو کارتنمی کنم این شوط است پدر دکتر عین گپه میزنه برش میگه تا که تو این امیرا ما چل سر بری نتی یا 200 نفر در اوتل نتی ما چیز نکنی قبول نکنی و دلست امضا نکنی ما بر دخترو نمیدیم پس ای امی پیسی را که میگیره این امی گرفته این رشوه است مال حرام است کسایی که تقوا داره از طرف دخترخیل برات کارت آمد نان نخور نا. اگه حرام میخوری نوش چه جان اما حلال نیست از طرف دخترخیل اگه دخترخیل مسلمان هستی این ما مثلا در منطقه زندگی کردیم سه برادرم از برای بچش وقتی که آروسی میکردیم پدر دختر قاضی اقلحت آدم مسلمان بود, بود؟ نگفت گفت. قادیسه چند قاضی دارم برای بشه کسی ما مکردیز رفتیم فیصلی آروسی رو میکرد گفت قاضی اول برای من چیز نبیری مسلمان است مجاهد بوده مسلمان بوده دیندار است با تقواه است گفت که اول برای خامل ما چیز نبیاری. دوم دخترا مرا در آرایشگاه نبرین. سوم در اوتل عروسی نکنین دخترک که ما بسیار با و با ایمان است، اینا سرلوچ بایلک پایلت و دیگه هر وقت که من روز جمعه یا وقت مرا وقت بده، وقت شبو بده، ما برتون دختره خودا تسلیم میکنم. بابا این خلاص. دلتان خودتان باش لباس داش چیز میگیرین، نمیگیرین ما قرض ندید. این هست که تو هم همین نفر مسلمان است و ما در روز قیامت شهادت میدیم که نفر مسلمان است و دختر مطابق متابقی سنت پیغمبر سن ای که باز داماد خیل خانه خود برد و باز چقدر نفرنان میدن یا قضا یا رمید یا نمیتن ای این طریق اسلامی هست این حالا اگر پدر دختر می میکنن ای هست، این ای حرام می خوره. خب موضوع دیگه است از موضوع خارج نشیم. پس نفس اما سو اول تشویق میکنه و به دیار دو وقت که بدی کردی نفس اما را به سو برای ملاومت نیستی، چه وانستی؟ بده رواج است دیگه. در شرایط که زندگی میکنی مجبور هستی این بکنی. مجبور هستی سیستم توطرائی کفتری ها و دفشار نواشق شوی. آه مجبور هستی دیگه. ها، مجبور هستی بوی عاشق کنی. مجبور هستی باید خانمت خیاط مرد بره و خیاط باز شانه ازیره بگیره و بر شانه بگیره و کمرش، چرا گورجی غیرت پیشه که ستوره است. چون سهن جامعه هم همی باید خصم بایدی دوزی ها مختل است عادت مردان آدت کردن آساستان و شرایط عینی هستن بچهش می توانی بینید غیرت غیرتی زیاد است آن بیغیرت ها سر غیرتی ها گفت می بیدین سر دیندار ها گفت می زند بیدیش ها سر دیندار گپ گفت می هر کسی که ببینید هر کس گمراهی <تصف> <تصفح> آخر زمان است بدی ها بالا شده و نیکی ها این <تصفح> مبلوی ششتا عمیفتو اومده هر زاگر ششیم یک کسی سوال کرد نماز خاندن بین موتر. پیشتر دا دا وسط که نماز خواندن در بین موطهر پیشا کذاروسه پرسوند وسط شروع کرد که نماز خواندن در موتر در راه سفر وقتی که انسان امکانات نداشته باشه میتونه در داخل خود دا سر موتر یا نماز بخونه یکی بزان گفت دا دا وسط شام میریم نماز شام هست نماز شام 5 دقیقه قضا میشه این شما رو پیشتر دکارت تا که ما دان خدا چور کنیم که وقت چور تو باشی چی میگه وقتی بخوام بخام بیاره اول تلخ باشه آره که چیزش آخر گفتن تو روز مفتی و چی میگم خلاص یک مفتی سایبه جواب در هاد که در زمان پیغمبر صلی الله و علیه و پیش حضرت او بکر می که این او پیش ازت ازت علی پیش عزت حالی که میرفتن میبینیم پیش عزت عبدالله این عباس پیش عزت این که میرفتن میبینیم پیش عبدالله این مسعود کس چرعت نمی‌کرد که یک مسئله را جواب بگه بدون ازی که دلیل و سند اتا کبار صحابه وقتی که بزر مسائل نمیفامیدن بلاخره میرفتن پیش بیبین آیشه را دیلاتالان هم باید رو سمی مفاد کرد مسئله میبود میرفتن پیش بیبین آیشه یا امان موم آیا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم در مورد از اینی مثلا کنان چیزی گفته در منزل خود توش میده باشی و مانرش میده باشی حال در مانستان یکی مفتی زیاده است و یکی داکتر برای هرکس بگید دلدار نیستم وقت بر دسجیه به خود اگه آنه کپسول کنه را میخواد بایه کشم بگید بکنم، داکتر است وقت اقتبا خلاص کرده کلگی برده برد, برد, برد خودستان کلگی آه، وای ظلم است تو بشه قلبی داره. وقتی که توفله تا که خورد قلبش استاد میشه میموره و الافولید یکولی یک دادم مرد خوشتیپ خوشتیپ خوشتیپ هیچ جنایتی در حق وقتی تو هیچ چیز نداری را دیگه مسئله تو است باور بکرم من بیچارهی وقتها ایهان کسی که تلفن میکنه یک مسئله فقیر پرسان میکنه میمم شاید جوابش چی است استاد میگین ببر تلفن آبسار میته برو نه آبسار پرسان کو از دکتر سر بیاس پرسان بعدا مسئله فقیر زیاد نمیفهمم بیچاری جواب نمیدم بیچاری دیروز یک تلفن کرده میگه دخانیم ما یک مشکل داریم چی مشکل داریم ما به یک گناه مبتلا شدیم خب گناه کبریت چیه؟ باشند خبر زنگ دوست داریم گناه کبریان گناه کبریان دیگه خب خیر است نوشیدن آنتیک کردیال آلمات چی کنم؟ نیم مثلا سوال داشتم دخانیم ما مشکل پیدا شد خب گفتم گناه کبیره چیه؟ خب آخر بلاخره که گفت از پیدا کردند که مولوی یسه برای زینی من کار کرده. نیمن کار کرده در شیر سعی صحیف این آ ماده سی ها که در روز قیامت جواب خدا رو چ بر از این نیمن کار کرده در شیرنیخورری اززی سر و از این نیمن کار کرده که ایجاب قبول شده این جوان رفته وی که نیمنگاه هست من م که نیمن کارانه یعنی نصف حلال است، نصف شرام از همین طلا نیمن کار رو تا برخدمده که تا سری میکنم من مع تو متفکر می کنمم که مثلا الب یعنی نیمه حالا سن نیم حرام. صلاح خلاصی بینی من کرده و این وقتی که رفته در خانه رو از پیشدلی پوره نکاح شده. مقتله شد، مگر اینکه بیاد. خب، گفت فالو چطور کنه؟ مفتو هیچ. این من نکاح چند نفر سان دار، خود خود مادر جان بود و پدر جان بود و ملا جان بود. گفتم خاله در روز قیامت جان، ساجانای چون اگر دارین نمی چهار نفر. اول از اول این وقتی که دین اسلام دین به قایه هست وقتی که نامزاد شد تا که نکای کامل سعی و شرعی نشدن میگی دختر بر تو حرام هست یک تو چلا کردی می حرام میکنی در چلا انداختن اول رواج مسیحی کردی رواج اون دوار کردی در چلا انداختن ضد دیگه به بیغمبر بر مرد پوشیدن طلا چل... حرام هست ایکار کردی و وقتی که پالوی زن نامحرم استاد شدی، ای دیگه گناه را کردی، دوین زنهای مردم رفتی، با لخ لخ داشتی، دیگه گناه را کردی، چندین گناه را مرتقب شدی. وقتی که نیمنکار کردی، من کذب علیه متعمده تو سر پیغمبر تهمت کردی. چون پیغمبر کار نکرده. تو گفتی مشروعیت داره، یعنی پیغمبر امی کار مشروعه بر مردم نگفت، ما بایدیم می کار مشروعه داره. پس تو پیغمبر متحم قرار دیدی و در روز قیامت پیغمبر سلام کتت محاسبه میکنن کنن ولو که هر کسی باشه، ایناله علامت نفس لوامه مطمئ... اماره به اول تشویقت می دوم بال از تشویق بر دلیل پیدا می کنن سومی است که انسان که نفس اماره به دارن خوبی ها بدشان میهن و بدی ها خوششان به یعنی شیطان پرش اعمال زشتم و زیان ساختن هر وقتی باش از از نماز بنمازی گپ بزنیم نگاه ها چقدر خوب میشد اول که فیلم هندی برات شما نمیگه آها چقدر خوبه آدم از فیلم هندی ما وقتی واسه بیوبسگی نیسته یعنی خادرن گل که هیچ قسم آدم است خانگی اومدی دیوانه موکان این چرا شیطان این سهوی علامتش چادری علامتش چی است که باز ای چون خودش به شیطان مبادله شده آل همیشه دیگرارا هم به شیطانی تشویق میکنند اگر ایش تماندی برات میوارت بگه و شدی آها جو اما امرا بیسوجان اگر یک دختر چادر پوشید بش میگه وی خوراک گرمی نمیکنی آفرینت که چادر کلان تو میگردی خیلی سختیه او خیر نبینه استاد زای یک جای رفتیم گفت خیر نبینه استاد زای دوازده سال چادر نمید پوشیدم آل از خاطر از شئی مام خیرتی شده آل شئی مام من چادر کلان کرد سختی رو گرفتم آن یکی از دوستای خدا را اکشان وقت کراریشی <تصفيق> بود و بوشد اینالی باز ای خودشون و شیطان رو شدن حال کار شیطان ها رو میکنن هر کار خیری که کهی در مقابلت قرار میرن چه میگی بچهش در این روز جمع، روز جمعام هم درست از ایلا بدی بیا بریم اگه ده ده هم چکر در خیلی روز جما نا... هم یک روز رخصتی داری رو و چون کار شیطان کار شیطان میگه. الهاده ای چارت علامت از علامات نفس اماره به هست. ببین که ای چارت اولمره داری بفهم که نفست اماره به سو هست، سرش کار بود. غیر از اون میفتی که چکوری. نفس لوامه چی علامت داره؟ اول علامت نفس لوامه ای است که وقتی تو میخوای گناه را بکنی، پیش از اینکه دیگران تو را ملامت بکنند، نفس ملامتت میکنه. چرا این کارو میکنی؟ ایف پسییت نکردی؟ مالت نکردی؟ ایف زندگیت نکردی؟ حتی وقت تک تنس نفس له هست یک کسی که اول کی حوالی فارغ شده بود اول نمبر با انتول فارغ شده بود لیاقتش چی میگه جوانیش زندگیش آریسی خودن؟ رفتیم داروسیش چرا داروسی اسلامی کردی گفتم خلاص فارسی اسلامی کردم و خاطر اینکه من فکر کردم که من 400 نفره خبر کردی این 400 نفر 600 ده معطل مومی باشه من به خودم فکر کردم خب 400 ضرب 60 2400 2400 ساعت ما مردمه ده چی مصروف کنیم؟ 2400 ساعت دګونو دګونو 2400 د روز قیامت کله زيبس شون د اول که نه کلون کمپیر و برو بر د جهنم اعلی بوبره ببيده به طرف دو جهنم چرون 6 ساعت پيش سر نه 6 تا شش 6 ساعت پيش دل چی چی شته شانګاکوش کمپیر سره کله شانګاکوش می رخصه خو درد نکنه کی به خیره به از پای دردی و کمر دردی خیسته نمیتونه اگر نشان اگر که های شورک میقره در مجلس آمدن وقتی میگه که بخشانش میگه خب ایره به طرف دوزخ میبره میگه خدایا نواسگه که من رو زور بردونجه الهی اوی عمل بود دوزخ. مخبش سفید بیچاره و ایش تو میکنه میهمان میگه خدایا چطور کنیم ما اخر هفته وگ که ما جمع میکرد خفه میشد قطه رابطه میکرد رفتیم تا مایلوس و یک ساعت که رفتیم سر ما چید کرد این جوان هوشیار گفت ما 400 ساعت وقت خدا نخواستم که در محصیت الله تیر کنم گفتم خیر چند نفر رو دعوت میکنم ایواز که 30000 برقاصه و سازنده بودم 10000 5000 یا 7000 جایزه گرفتیم، آوردم مسابقه سیرت کرد. شجره اسلام کی بود بی بیسمع فلان جوان جواب میدن بتج برچکدنه سات دیواری توفه 7000 ما برای جوانات کل ها, جوان ها تشویق شدن به آرسی اسلامی خلاص داخر دا دعا کردن که خداوند بارک الله لکه و بارک الله علیک و جمع بینکم و بخیر کله کی برای کردن وقف خلاص همین شش صد و آریسی مام شد زندگی مام شد در معصیت الله هم تیر نکرد چرا نفسش لوامه هست اول بانه گناه شد نفس از داخل گفت من ایونو باریم چی تومیش؟ گوبل آخر ما دارم کردم مادرم دارم کردم بیادار ما کردم یگان کمپیر است که شیطان صفت است. او کا کا تو خودت است. تو از خدا بیترس. نه؟ خب مورد هست است. شما مورد خانه چیکنه؟ یعنی قرآن بر مورد خاص. در روز قیامت قرآن بر تو میگه. یعنی من قرآن, یعنی قرآن با این در مورد خانه خوانده شم. قرآن خو کتاب زنده هاست باید داروسیت قرآن خونده شود باید در مجالس قرآن خوانده شود اینی دیگه دیگه علامت نفس اماره لوامه چی است نفس لوامه مجرده که انسان آجیز است بیچاره بی هستیم هیچ خدا با بیگناه نیستین بگوییم نیست کل گناه ما گناهگار هستیم و گناه های ما بسیار زیاد است لکه نفس لوامه عادت چی است که وقتی که به مبتلا از پیش یک لحظه شد فوراً از داخل تلاشی میکنن از داخل دارم ملامت میکنم که بسیار اشتباه کردی بسیار غلطی کردی پس بلاخره توبه میکنی ولی این دفعه خطا خورد الاهی بد کردیم توبه کردیم دیگه نمیکنم دیگه دهی وسایل نیست ولی راسی اشتباه کردم راسی به خودم من چل دانه سی دی دارم از برای خودم چل دانه سی دی دارم یا که سی دی فروش که یا سی دی فروش اومد گفت مخان... ما که چطور کنیم نفقه پیدا میکنم سی دی خواندن می گفته گفتم بابا فکر کن که هزار نفر اومد از پیش تو سی دی خرید 40000 دلار روز قیامت ده خانت است دیگه وظیفه اسلامی نیست که تو باید سی دی خواننده و سی دی رقص بفروشی خب هر کسی که می دو وسیله هستی و تعاونوا علی البر و التقوا الله میگه شما در نیکی ها تعاون کنه برو خیر چیز عادی بفروش یک مروسی مسلمان شده بود در مسجد شاه شمس شیره سیدی شاه مسلی کرده او سیدیا گفم صدیدم مسجد اومدم گفم وقت که اومدم دیگه هیچ چیز نبود که ما کار کنم یک چند تا اونجا نماز گرفتیم تسبیح گرفتیم مسواک کردیم چله کا در مسجد شاه شمس شیرم یک پیدا میکنم من میبرم آزمایش از امتحان از سوال جواب در است ایناله و تعاونو تعاون به و به تقوان و لا تعاون و علا الاسم و العدوان تعاون به این اسم چی هست؟ از تو که مشوره میگیره میگو مدید تو کلان قوم هستی یا سفیر سید، فامیده هستی در این مجلس حالیسی دخترم چی کنم؟ آیت قرآن در نظر بیک و تعاون و علا البری و تقوان و لا تعاون و علا الاسم و العدوان در برد بردقان برد. سیست من نموانده دختر خیل هستم لیکن نگه پایم میر ساز نباشه رخص نباشه این نباشه این نباشه،, ای نباشه چرا با تاوان برای اسم و میشه یه دیگه علامت دیگه نفس لبامه است. نفس لبامه همیشه همیشه چیزهای خوبه برای انسان خوب جلوه میدن و چیزهای بد بد میدن برای میبینی که کار برست نکنی ای کارزش نکنی و چهارمی علامه چی است چهارمی علامه نفس لوامه است که همیشه این انسان دیگرارا هم در بدیها ها نهی عن منکر میکنه امر بالمعروف میکنن بر برادر میگه حیسه متالم چی کار میکنی نکوهه میکران از داخل زورش نمیرسم، لکن برش میگه ولی سازا اگر خوب نیست اشتباه میگن. همان نفس هم مرا به سو میگه نفس هم مرا به سو میگه حیسه خیر از تو ای تو خیر زار تو بنوشین می دیدی 400 نفر گونوش سر لالای وقتی کی گپ نمی زنند تو 400 نفر پس روی قایسه پای سه خیر زاروسی برادر نه چند نفر اله جان نفر دایی جان نفر دوست خدا جوانایی یروسونه می آین اینج مجلس میشینیم یک درس میگیریم یک مسابقه میگیریم خیر مسابقش مصرفش سر ما یک روز یک جای دیگه یک کس چی میگم می موسیقی خسایرو هست بوز یک نفر دیگه هم گفته که بصراوج گفت برادر روح که است معنویات است قضاای معنویت چیز معنوی است باید یک چیز معنوی قضاایش باشه قرآن تقوا ایمان این قضای روح است گوش هست که موسیقی یک چیز بله هست. نه موسیقی که است چیزی مادی است برای بخش مادی وجود انسان غریزه خواسته های نفسی رو خوش دارد بگوی قضای نفس اما به سوء است نه قضای روح است گفت نه ان شاء آخر دید که خیلی تا بگفت خیلی تا کلان که بابا کلانت مرد باز خاندرها گلنار بگم و بند دواره جان کندنش و وقت یاسین شریفه میخونی و خاندرها ببین که داده فقط چت میخونه نمیخوره. پس لگی به یقین هستند که غذای روح قرآن است از این خاطر وادی که جان کندن میشه اون که فاسق و فاجر و بیدین و گمراه باشن ها؟ های در سر خود بیلتونم در مردش باز یاسین شریفه با خاطر ازیکی میخوامان که در اونجا باز روح به خوبی میبره. اگر نر هستی یا فنار ازیکی باز ما ساعت موسیقی میمانیم. باز هم که سه شرف رو جان میکنی یا نمیکنی. رو باز خیزک داده میره. همه میبره از خود. خاطر وقتی که یاسین شریف فکر کنی کلمه خانی دینه خانی رو باز یا رسانی میبره. چرا؟ خزای رو قرآن است. برای یک مسلمان. اما برای یک کمونیست. اما برای یک ماتریالیست اما برای یک انگلیس ها مثلا مثلا انگلیس باشه برای انگلیس درست است چون ایمان نداره به قران اما تو که ایمان داری یه فاز رو تقصیر میگیری کار شیطان میکنی نامت ولی کار از شیطان میکنی خدا میگه ولی گر ولی این اصل لعنت در مولونا میگه ولی قسم ها لعنت به قسم ولی میگم من مسلمان هستم باز قصای رو چطور روح تو مسلمان است و او با موسیقی تغذیه میشه؟ با موسیقی که احادیث است که حرام است حرام است حتی موسیقی هایی که در اون صفت پیغمبر گفته شده، ایران میگن حرام است به خاطر چی؟ به خاطر اینکه که در زمان پیغمبر پیغمبر یا زنان بیاد محمد با موسیقی بکنه محمد مصطفی دو در احمد بسفاه از دولی گفه چشون گوشه های از کدوم دین گفت میده اگر یک نفر اروپایی میکنه و بوده اونجه هست و یک گفه هست در اروپا دلش اما در اسلام دا دین در عقیده این است دین اسلام چیز پاک است تبلیغش از طریق چیز پاک شد پاک از طریق پاک قرآن چیز پاک است طلاوتش در مزید میشه والا ما بریمک در سینما فلم اندی چالان هستم جریان فلم اندی خوا... چندس آیت میخوانم که مردم متاجر شد چطلخانه در تشناب میری قلما هم میخوانم خب اینه این علامات نفس لوامه علامات نفس مطمئنه چیست؟ راضی و مردیه هست راضی است از قوانین الله وقتی که برش گویی خوارج الله گفته که حجاب فرض است اصام و اطا <تصحيح> صحابی کرام نفس مطمئن نداشته مجرده که یک حکم الهی برش گفته میشه، دلیل پیدا نمیکرد. کن صحابی آمده دویده دویده دوید دوید دوید دوید دوید دارم در دموری یک صحابی مبارک از طرف می چی گفت؟ گفت که خبر نداری گفته. گفت که آیه‌ شریف نازل شده. و صحابی دیگه آیت نازل نشده تجارت میکنه یک خوم کلا این طرف سر شراب پرست، یک خوم دیگه این طرف سرعصمش. چطور است؟ یا پس علی دیگه صاحب خوم و شراب برست تجارت میکنه تجارت است. او بال حرام نشد. بلاخره این بچه خبر شد. چی خبرشه؟ گفت آیت قرآن نازل شد. بگو کدام خوش خبری میاد برات. خوش خبری باشه. چی؟ آیته قرآن نازل شد که انم الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام خمار و شراب و فلان و فلان چیزا که هستن رشتون چتاله، است؟ من عمل شیطان کار شیطان است. فجتنی بوه از شراب و شراب فروشی و معامله با شراب و با خماری باید اجتناب کنید لعلکم تفلید شاید که شما فلاح و پیروزی نسید شا. شاید سرتان رحم شد صاحبی و برق فعلا سنگه گرفت چی میکنید سر چی امید چیزایید؟ زرفا دو زرف فکره ایست این قیمت داری بسیار قیمتی زرفا هست اما این خوما شراب شه باز شپک خوبشه خوما از اینجا تاخانه برم امر خدا تدبیق میشه از اینجا تاخانه امر خدا تدبیق میشه بازیر باش را بزیر اما از شکستان دیگه کاسا و چمشش هست کن تو که از فلم های خاندن ها توبه میکنی که غذب خدا نازم میشه اول باز سیزیوی شبهشونه نه با سی کاش پیش اداره زیده باز نگاه کنم باز آنگاهان دوست دو فاقدون باز هتدونشش شاید آلمانی تیلگو دو در آگاهان کجا نه سیزیگا که چال خیره سیزیگا کس باشه اینی کس باشه اینی کس و قرار موسیقیش هست نیست لشینه از اینی کس پس تا دچالک خواند د. نه امت خوب مردانه و فقط اصل کلینی داره غلامش جانبش خلاص اگر ایمان قوی داشت پس انام او صحابی کرام چی داشت نفس مطمئنه باشه نفس مطمئنه چی بود که از آن چی که الله میگفت راضی بود در این فلسفه نمیگفتن و حالا سبب نماز صبح چرا درکات است یک صحابی سوال نکرد نماز پیشین چرا 4کات فرض است حجاب چرا سر فرض است یعنی در کل چیز بخانید احادیث پیامبر صلی الله علیه یک روز شده که پیامبر صلی الله و گفته باشه و صحابه کرام در مقابل از خیسه باشه که من یک سوال در بفرمایید چرا حج بریم چرا حج فرض است چرا زکات فرض است چرا؟ چرا ها چرا،, چرا چرا از چی پیدا شد به خاطر اینکه نفس مطمئنه نیست نفس مطمئنه علامتی چی است که از آنچه که الله امر کرده راضی هست و از آنچه که الله نهی کرده او نه هم نمی‌کنه و رضایت داره و به این شکل نفس ازی به نفس مطمئنه مبدل شده که خداوند مطال جل جلاله جل برای ما و شما نفس مطمئنه را نصیب بکنه که از احکام الهی راضی باشیم و الله جل جلاله جل هم ما را راضی بسازد سبحان ربک الا بالذلتی ما یسفون و السلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین